سه مثل یک لاله بلور به نازکی گلبرگ‌های های آواز یک غناری عجب دو شنبه های ساده دلنشینی برایمان من گیل مرد کوچک اندا. اما باز هم بگو که فاصله میان رؤیاهای تراش خورده و برگفتاده و واقعیت های بدون مهرا چگونه باید پیمود؟ بی آنکه نرسیده به نزدیکترین مرز واقعیت همچون اسبان سخت تاخته ی جان باخته کله کنیم یا جان بر لب رسیده با گلولهای آنسان که به اسب ها شلیک می کنند خلاس کنند و رها با تازنده جادو شکن عشق میتوان آن آنگونه مهرمندانه رفتار کرد که هرگز از پادر نیاید و از دست نرود حتی در طول طولانی ترین سفر در های کینه های بدخواهان. هیچ عشقی اما صد هزار بار گفتم محبوب آزری من. هر قدر شورنگیز و جادو شکن اگر قرین دوست داشتن پرشور بچه ها نباشد، عشق مشروع نیست. اگر بتوانی به دلایلی فقط یک بچه را در سراسر کره خاکی دوست نباشی، بچه ای را که معلول مطلقاً آموزش ناپذیر تکه گوشت است لایق آن نیستی که یک ساعت خوش داشته باشی لایق عشق که حرفش را نزن شاید فکر می کنی که تو را اگوونه بار نییاورداند که بچه ها را با تمامی عاطفه خیش دوست بداری نه؟ فکرش را هم نکن. مطمئن باش که چیزی به نام بار آوردن وجود ندارد بار آمدن وجود دارد و بار آمدن محصول اندیشه و اراده خود توست نه آنچه به تو منتقل کردند خالسان بخواه که مهربان بودن با کودکان را بیازمایی خواهی دید که دیگر برایت هیچ راهی به جز مهربان بودن با بچه ها و امر بر بچه ها بودن باقی نخواهد ماند بانوی خوب آزری من آن طبیبان را که بچه های بیمار را روی دست های ملتمس مادران درماندشان آنقدر نگه می دارند که بچه ها جان می کنند و می میرند فرو بگذار ما روزی این طب بدکار ابلیسی را به گورستان خواهیم فرستاد همراه با سنگی بران که اینجا ترین انسانکش کشه تمامی تاریخ را به خاک سپرده ایم باشد که زمین خاکسترش را نیز هرگز به ما باز پس ندهد عزیز من، طب روزگار ما عشق را با قدرت اهریمنی خیش رد می کند تا بتواند شهوت را سریر سلطنت نامبارک خیش کند اگر میخواهی عاشق خوبی باشی یا خوب عاشقت باشند حتی در نوجوانی سنی که عشق چیزی جز برق نگاه لمس دست و تشنگی لبها نیست به خیشتن بیاموز که علا رغم همه دلمشغولی ها بچه ها را با تمامی پهناوری بیکرانه قلبت عزیز بداری این کار به آسانی شدنیست مثل از برکردن یک قزل ناب مولوی دلت میخواهد از عبور دو کبوتر در اوج آسمان سو سو زدن دو ستاره همجوار در شبیبی محتاب شکوف باران دو درخت از گیل جنگلی در کنار هم پیوستن که آب در کوه پایهی به هم حضور مشی و مشیانه در رؤیا حرکت دلک ابر از پی هم و دو خاننده که هم صدا و همه تصنیفی قدیمی را میخوانند به اوج لذتی برسی که بیانش نتوانی کرد به خودت یاد بده که از زمین خوردن یک تفل رهگذر به گریه بیفتی با پرده از اشک در برابر دیدگان بشتابی، از جا بلندش کنی به نوازیش به تکانیش به خندانیش شیرینش کنی راهش بیاندازی. بی توقع هیچ سپاس گرچه در چشمانش چراغانی هزار چلچراغ را خواهیدید دید باز است مرد هایت را بخوان چیزی به صبح نمانده است